یا شرم شاه شاوزرده خیش دلش بیچاره شد از چرده خیش ذکردار خودش آمد همین شرم بر سنگین او زین شرم شد نر هم از شاه و هم از دادار ترسان که بشتستین همه سوگند و پیمان ویست از آن حال آگاه گشت مادر را سخت سرزنش نمود از پیمان بیفرجامی که با شاه موبد نهاده بود نکوهش کرد و برادر شاه موبد را با پیامی درشت بازگردانید مرورادید دید ویس ماه پیکر ز شرم و بین گشته چون معصفر بروزد بانگو گفتا چه رسیدد که هوش و گونه از تنبر پریدد زنجار خرد دور افتادی که رفتی دخت نازاده بدادی خرد گفتار چونین کی پسندد روا باشد که هرکس کس بر تو خندد پسانگه گفت با مرد پیونبر چه نامی وز که داری تخم و گوهر کنون که این بزم دامادی بدیدی سرود و آفرین یک یک شنیدی انان باری شبرنگ برتاب شتابان رو به چون تیر پرتاب به نامه بیش از این ما را مترساند که دارم این سخن با باد یکسان. سان مکان ای در درنگ راه برگیر که ویرو هم کنون آید ز نخجیر ولیکن بر پیام من به موبد بگو چون تو نباشد هیچ بخرد ز پیری مغزت آهومند گشته است ز گیتی روزگارت در است نجستی این جهان جفت جوان را ولیکن توشی جستی آن جهان را مرا تا هست ویرو در شبستان نباشد سوی مروم هیچ دستان چو دارم سر به گوهر بار در بر چرا جویم کنار خشک و بیبر وقتی زرد بازگشت و شاه موبت از قصه عشق ویرو و ویس آگاه گشت و پاسخهای دروش که ویس داده بود شنید سخت براشفت و به سوی کشور ما لشکر کشید چو زرد از ویس این گفتار بشنید انان باره شبگون بپیچید همی رفت و نبود و هیچ آگاه که ره در پیش هستش یا سیه همیتا او زمرد آمد سوی ماه نیاسودی ز اندیشه دلشا که ناگاهی پدید آمد یکی گرد به گردن در گرازان نامور زرد ز کنجویی شده چونان به آذرم که در چشمش جهان تاری بود از شرم چو زرد آمد چونین آشفته از راه ز گرد راه شد پیش شنجاه شنجه گفت زردا شاد بادی به نیکی دوستان را یاد بادی بگو چون آمدی از ماه آباد نشادی از پیام خیش یا شاد جوابش داد زرد از پشت باره به وقت شاه شادم هامواره از این راه آمدستم نارواکام پسوداند که چونم برنهد نام پس آنگه از تکاور شد پیاده میان بسته زبان و لب گشاده به گفتش جاودان پیروزگر باش همیشه نامجوی و نامبر باش زمین ماه یک سرباد ویران شده معوایه گرگان و شیران بسی ساز عروسی کرده شهرو عروسش ویسه و داماد ویرو چو دادان آگهی مرشاه را زرد رخان از خشت شد مرشاه را زرد ز همی لرزید چون بید چو در آب رونده عکس خورشید چو شاهنچه زمانی بود پیچان دلن در آتش اندیش سوزان فرستادش به هر راهی سواری به هر شهری که بودش شهر یاری یکا یک را به نامه آگهی داد که خواهم شد به بوم ماه آباد چون از شاه آگهی آمد به ویرو کمزو چینه دارد همز شهرو زهر شهری و از هر جایگاهی همین آمد به درگاهش سپاهی سو شاه موبت خم بدینسان سپاراست همچون باغ نیسان همی رفت از زمین بر آسمان گرد تو گفتی خاک با مه راز می کرد همی آمد چنین تا کشور ما هماشفته سپه هم کینور شاه دلشگر یکتگر را شد برابر چو در یای دمان از باد سرسر سرزاری سخت دشوار قارن پدر ویس زخم برداشت و سپس درگذشت. گذشت اما سرانجام ویرو پیروز گشت و شاه موبد کاری از پیش نبرده به سوی خراسان روینه ها و ویرو به گمان آن که شاه موبد در دنبال شکست خود به خراسان گریخته است از تعقیب او چشم پوشید و به جانب دیگر راه سپار شد هوا از نیزه گشته چون نیستان زمین از خون مردم چون نیستان ز بس و زبس شمشیر خونبار جهان پر دود و آتش بود هموار تو گفتی همچو باد تند شد مرگ سر جنگاوران میریخت چون برگ چو خورشید فلک در باختر شد چو روی آشغان هم همرنگ زر شد تو گفتی بخت موبت بود خورشید جهان از او ببرید امید شو شاهنشه زدشت جنگ برگشت جهان بر برخیل او زیر و زبر گشت اینان برتافت از راه خراسان کشید از دین ور سوی سپاهان نوی رو خود مرو را آمد از پس نه گردان و سالاران او کس گمان بودش که شاهنشاه بگریخت به دام ننگ و رسوایی در دگر لشکر به کوهستان نیارد دگر آزار او جستن نیارد دگر بود ویرو را گمانی دگر گم بود حکم آسمانی وقتی شاه موبد در كه که ویرو در او نیست، از نیمه راه بازگشت و به گورا رسید. و به ویست پیام های پرمهر و از صدای عشق خود به ها بازراند چو ویرو رفت با لشکر بدان راه ذکارش آگهی آمد برشا به گوراب آمد و آورد لشکر که آنجا بود ویس ما پیکر چو خورشید بوتان ویس دلارام تن خود دید همچون مور در دام به فندق موش را برچند برکند نرگس نرگست بر سمن گوهر پراوکند خروشان زار با دایه همی گفت به زاری نیست در گیتی مرا جفت ندانم زاری خود با که گویم ندانم چاری خیش از که جویم پدر کشته برادر رفته از پیش بماندم من چنین تنها و درگیش از این بدتر چه باشد مرا بد که ناکام اوفتم در دست بود. رسولی آمد از پیش شنشاه پیام آورد از اون از ما اگر خواهد به من دادن ترا بخت چه سود آید را از کوشش سخت من از بهر توی در استم کجا در مهر تو بیدل شدستم اگر باشی بنیکی نیکی مرمرا یار ترا از من براید کام بسیار همه کامیز خوشنودید جویم به فرمان تو گویم هرچه گویم کلید گنج ها پیش تو آرم کم و بیشم به دست تو سپارم همی تا جان من باشد به تندر تو را با جان خود دارم برابر ویست در پاسخ پیام شاه موبت به فرستاده گفت که شاه نباید در آرزوی مهر و همسری او بنشیند زیرا هرگز كامروا نخواهد گشت و جز نومیدی بحر ای نخواهد یافت چو ویسه دلبرین پیغام بشنید تو گفتی زو بسی دوشنام بشنید چوزت چاک برتن تن پرنیانش پدید ز گردن تا میانش هوای فتنه. اشقی نهیبی بلای تنگدازی دل فریبی حریری آقومی خزی پرندی خرد بر سبر سوزی خواب بندی چجام زد ماه دو هفته پدید آورد نصرین شکفته گفته به لب جوابی داد چون س به روی میر برزد خنجر جنگ، به گفت این پیام بد شنیدم، و اون زهر گزاینده چشیدم کنون رو موبد فرطوت را گوی، به میدان در ما از بلا گوی مبر بیش در امید من رنج، به باد یافکاری بر مد گنج نگر تا تو نتنداری هرگز مرا زنده به زیر آری از این و یا هرگز تو از من شاد باشی و گرچه جادوی استاد باشی مرا ویرو خداوندست شاه هست به بالا سر و از دیدار ما هست مرا تا هست سر و خیش و شمشاد چرا آرم بید دیگران یاد تو قارن را بدان زاری بکشتی نبخشودی بران پیره بهشتی کجا در خورت پیوند جویی تو این پیغام یافه چند گویی؟ به پیرایه مرا مقریب دیگر که داد ایزد مرا پیرای بیمر تو از پیوند من شادی نبینی با من یک زمان خورم نشینی تو بیگانه من چون کامیابی وگر خود آفتاب و ماتابی بلرزم چون بیاندیشم زنامد بدین دل چون توانم داد کامد میان ما چون در افتاد نباشد نیز ما را دل به هم شاخت وقتی رسول شهریار بازگشت شاه موبد از سخنان تلخ ویست ناخشنود گشت اما وقتی دریافت یافت که پیوند ویست با ویرو سامانی نیافته است شادمان شد و طریق است که با برادران به رای زدن نشیند باشد که چاره کار یابد و جانش از سوز هرمان برهد اما از این راز آگه نبود که که این برادرش رامین از دیرباز مهر ویس را در دل گرفته و به انتظار دیدار محبوب عمری در آتش حسرت سوخته است. چو بشنود این سخن مرد شنشاه ندید از دوستی رنگی دران ما برفت و شاه رازو آگهی داد شنیده پیش او کردش همه یاد شنشه را فزون شد مهر در دل تو گفتی شکرش بارید بر بردل همین گفتان سخن ویسه همین راست و از این گفتار شهر را خرمی خواست چو شاهنشاه حال ویس بشنود به جانندر هوای ویس بفسود برادر بود او را دو گرامی یکی رامین و دیگر زرب نامی شنشه پیش خواند آن هر را برایشان یاد کرد این داستان را دل رامین زگاه کودکی باز هوای ویس را می راز همین پرورد عشق ویس در جان ز مردم کرده حال خیش پنهان چو کشتی بود عشقش پج امید از آب و از باران بریده چا آمد با برادر سوی گوراب نگر باره شدن در کشت او آب امید ویس اشقش را روان شد هوای پیر در جانش روان شد چو تازه گشت مهرن در روانش پدید آمد درشتی از زبانش چرا را هوا در دل براشفت ز زروی مهربانی شاه را گفت ما بر شاها چنین چون این در این کار مخور بر ویس و بر خوبیش تیمار از این کارت به آید بسی رنج به بیهوده برافشانی بسی گنج نه هرگز ویس باشد دوست دارد نه هرگز راستی جوید بکارت چگونه دوستی جویی و پشتی ز فرزندی که بابش را بکشتی به بسیاری بلا او را بیابی چو یابی با بلای او نتابی و ترکاری تو را باویس آن است که تو پیری و آن دلبر جوان است چو در خانه بود دشمن تو را یار چونان باشد که داری باستین مار چو دیماهی و آن دلبر بهار است رسیدن تان به هم بسیار کار است چو بشید این سخن موبد ز رامین مرورا را بود این پنده شیرین چو بیماری بودن در عشق جانش که شکر تلخ باشد در دهانش اگر چه پند رامین میر بر بود شندشهر راز پندش مهر افزود دل پر مهر نبذیرد سلامت بیافزایت شتابش را ملامت ملامت بر جگر شمشیر تیز است کجا بر آشقان کردن ستیز است نترسد آشق از باران سنگین وگر باشد به جای سنگ جوبین هرانچ از وی ملامت متخیزد آهوست مگر از عشق برزیدن که نیکوست هوا چون آتش است و سرزنش باد چه سازد باد چون در آتش افتاد زباد آتش فروزد هر زمانی به هر شعله از او سوزد جهانی چون مهرن در دل شه بیشتر شد دلش را پند نیشتر شد دهانی گفت با دیگر برادر مرا باویس چهار چاره نیست بنگر که سازم تا بیاوَم کام خود را بیافزایم به نیکی نام خود را برادر گفت شاها چیز بسیار به شهرو بخش و به فریباش بدینار به نیکی امیدش ده فراوان پس گاهی به یزدانش بترسان. بگو با این جهان دیگر جهان است. گرفتاری روان را جاودان است. چو گوگندت چرا زنهار خردی؟ چرا بشکستیان پیمان که کردی؟ بمانی شرم زد در پیش داور نیابی هیچگونه پشت و یاورد. از این گونه سخنها را بیارای به دینار و به دیبایش به پیرای بدین هردو دو فریبد مرد هوشیار، همه کس را به دینار و به گفتار اگر صاحب دلان باب انایت به گشایند، بقیه داستان در برنامه آینده تقدیم می شود. خایده، وخایی، سیمین، مجید نجاهی، سرخوش، حسن ناهید، یوسف زمانی، محمود پور اسکرپور همدانیان، اسماعیلی زفیرگ داداشیان، زخره، ازرا، شجره، سیروس ابراهیمزاده، بهزاد فراحانی و آذر پجورهش تنظیم نادر وزیندی موسیقی از علی تشبیدی تهیه کننده منوچه خلیقی نظر امیر فریدون جرکانی